امیدده امید که یاد میگذره پشت سر هم برخی نیست همش همون دور رو بر منند روی رو باید فصل کنی یه چند زلی هر زنشون زن داره یه قومی حالا میخواام گما روواسطتون تعریف کنم بازی زندگی و جلو چشو تموم کنم قوم بینمونشون نبوداره نککششون بهاج س اون شبزش رو دور روی له به چیزای کم زندگیش مثل یهشان از نظر لحظه پروم بو ماتممه. اما خودش داره رسو از این اینکه از سر پا حالا رسیده دیگه اون به آخر خر جاش حاضر آره ولی پیش ختو قدر داره فع دیگه به استفار که دیروز داشته بود اوج قوم برتر خودو به ما بده نشیه راهی که میخوای همون حق تو از این یه جون بده تا تو راحت تو فقط نشش من تنها یاد بده به ما یه تکا جنگ اهلی من برسیم به اوج من به ما بده نشیه راهی که میخوای همون حق تو از این یه جون بده تا تو راحت تو فقط نشش من تنها یاد بده به ما یه تکا جنگ اهلی من برسیم به اوج من من قم پولدار با عصب نصب همیشه فکرش قوله و قسم صبح تا شب نمیره مسترا که جام گره هنره توی چا اونا زندگی چیزی نمیدونه همه چی رو توی توی مال خود میدونه ماشینه عالی ویلای عالی بلی عشق و زندگی پیش اون نداره جایی نداره جایی بچه نداره به از بال تنگ چون که نیستن اونها به میل نداره رضایت از شوهرش چون جواهر داره کمتر از خواهرش حالا رسیده اون دیگه با آخر خجوش خاطره ولی پیش خاک و غرب. نداره که دی داشت بود یه قوم کمتر بدم به ما بده نشی یه راهی که میخوای همون حق تو از این یه جون بده تا تو راحت شو فقط نش شلنت یا بده به ما یه تفاهم ته جنگ اهلی من به اوج من به ما بده نشی یه راهی که میخوای همون حق تو از این یه جون بده تا تو راحت شو فقط نش شلنت یا بده به ما یه تفاهم ته جنگ اهلی من برسیم به اوج من من مشونه متوسط رو به بالا نگاه میکنه متراسه همشا شد ترسه فکرش مثل اونه که بالاتره از خودش داره وهم از نگاه کردن به پایین قبل تو خالی ترسه بیفته پایین نگاش نمیتونه رو به بالا هم باشه ممکنه آخ از تاهتا نیش باشه از اول زندگی بعد این همه حدی نداره هیچ روحی واسه پتو پی نفهمیدو نمیفهمه کی یاو کرده خودش رو از خود و خیش حالا دیگه رسیدم اون به آخر خجاش حاضر آره ولی پیش خوکم نداره فرق دیگه اون از خر یه <تصفح> نمیدونه ارزش برتر بوده یا کمتر به ما بده نشون یه راهی که میخوای همون حق تو از اینجوری بده حتی تو رو حقو فقط نششند تنها یاد بده به ما یه تکه جنگ اهلی من به اوج منی ما بده نشون یه راهی که میخوای همون حق تو از بده حتی تو راه چون اگر نشه شرمنده تن یاد بده به مای طفح ها دهه جنگ احری من برسیم به اوج منی من